سینی شیرینی را که مادر از تهران آورده جلو گلبانو میگیرم از لحظه‌ای که آمده سرش را بلند نکرده اما کتابش هر چند لحظه یک بار ورق می‌خورد بفرمایید شیرینی خونگیه مادرم خودش درست کرده خیلی ممنون دست شما درد نکنه یک دانه شیرینی نارگیلی برمی‌دارد و توی پیش دستی می‌گذارد داوود هم نارگیلی برمی‌دارد هم گردویی سینی چای را میگذارم کنار علاءالدین. با چای بخورین. دیشب برای داوود فقط شیرینی آوردم. اما حالا با آمدن گلبانو خودم را میزبان احساس میکنم. رفتار مادرم و نسا کاملا تغییر کرده است. بیشتر از آنکه پیش من بمانند توی اتاق بیبی خاور هستند. دو شب از هر دو نفر توی اتاق بی, بی خاور دیشب داوود را فرستادند پیش من. مادرم به تنه گفت، زننه او مردانش کردیم. احساس میکنم چیزی را از من پنهان میکنند. دلم شور میزند. دیشب سعی کردم از داوود حرف بکشم اما ظاهراً از کل ماجرا بی اطلاست. گل رو نیم ساعت پیش نسا آورد. گفت، دختر بیچاره امتحان داره. نمیتونه تو اتاق خودشون درس بخونه. بهتره تا موقع خواب ایجا باشه. حالا مطمئن هستم کاسه زیر نیم کاسه است گلبانو را هم از خودشان دور کردند نمیدانم چطور مادرم و نسا با هم کنار آمدند. دلم میخواهد با گلبانو حرف بزنم. دختر با هوشی به نظر می رسد. او حتما چیزهایی میداند که من نمی تنم. خانوما خوب خلوت کردند سرش را بلند می کند. لبخند می زند. و بلافاصله سرش را روی صفحه باز شده کتابش خم می‌کند داوود گیج است به گلبانو نگاه می‌کند انگار او هم منتظر کلامی از جانب اوست مادرتون خیلی زرنگه که تونسته مادرمون ما نسا بده گلبانو میگوید مگه قهر بودن نمیدانم طعنه میزند یا واقعا سوال می‌کند احساس می‌کنم گیر افتادم نمی دانم چه بگویم میخندم، معنای خندم این است که وقتی همه چیز را شنیدید، دیگر چرا این سؤال را می کنید گلبانو هم لبخند می زند. سعی می کنم لبخندش را معنا کنم از من چیزی دستگیرتان نمی شود لطفا مزاحم نشوید رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد را بر صفحه پنجه و هفت را می خانم. چیزی در ذهنم نمی ماند. ناگهان فکری به ذهنم می رسد از جلال آل احمد چی خوندین گلبان و خانم؟ سرش را بالا می آورد برای لحظاتی توی چشمهایم خیره می شود احساس می کنم توی چشمهای من دنبال نام آثار آل احمد می گردد چند بار پلک می زند و بعد میگوید گوید قربزدگی رو یک بار خوندم چیز زیادی دستگیرم نشد اما نون و قلم نفرین زمین و همین رمان مدیر مدرسه را هم خوندم. خوشتون اومد؟ بله، خیلی قشنگ بودن. مخصوصا نفرین زمین. چرا نفرین زمین؟ یه جوره کل ماجرا برام آشنا بود. داوود سرش را به دیوار تک داده و چشمهایش را بسته است. نمیدانم به شیوهی بچگی های خودم مطالب کتابش را مرور میکند، یا خواب است گلبانو زانوی داوود را تکان می دهد داوود یکه می خورد چرت کوتاهی زده است سیگار آتش می زنم حلقه های دود را در فضای اتاق دنبال می کنم. از دود سیگار ناراحت نمی شید؟ نه آدت دارم بله مادرتون چپک می کشه گلبانو خانومه سن که بهتر شدید انگار دیگه دارو استفاده نمی کنید. نمی دانم چرا آسمان و ریسمان می بافم. دلم نمیخواهد دوباره گلوان سرش رو روی کتابش خم کند. بله، تقریبا خوب شدم. انگار تبابت های نسا نبوده. بله، تقریبا هر شب به جایی چای دم کرده گلگاف زبون و سنبول تیب بدم نیست؟ نه، خیلی هم خوبه. بعد نیست شما هم امتحانی بکنید. به نظرم شما هم به آرامش نیاز دارین تیر به هدف می خورد. به جای اینکه من سر اصل مطلب بروم او رفت است. مادرم هم حتما از همین دم کرده خورده که آروم شده؟ به جای پاسخ پرسشم می گوید. احساس می شباهت زیادی بین مادر من و مادر شما هست. منظورتون چیه؟ هر دوتاشون حسابگر و آقابتندیش هستند. سکوت می کند، دلم میخواهد باز هم ادامه بدهد آنچه چرا می داند بگوید، بلکه آشوب درونم آرام شود مادر شما رو خوب نمی اما مادر من تونسته یه افسر ارتشو که پدرم باشه، گماشتهی خودش بکنه مادر من از آن گماشته است که هر شب جیب اربابش را خالی می کند و صبح دنبال دوزگ می میخندم می خندم. او هم می خندد داود از صدای خنده از خواب می پرد احساس می کنم با همین یک جمله فاصله چند هفته ای را از میان برداشته است حالا می توانم با خیال راحت از او راجب تجمع زنها در آن اتاق سؤال کنم اینا اونجا چیکار میکنن می گلبان و خانم؟ حرف می چای می خورن؟ چپق و سیگار میکشند ولی من بوی توتعه میشنوم لبخند میزند می زند سکوت میکند. داوود دوباره سرش را به دیوار تکیه داده و خوابیده است. بلند میشوم، سرش را روی بالشت میگذارم و پتویی رویش میاندازم. چشمش که به کتاب میافته خوابش میگیره. میگویم فکر کنم راه طولانی شمساباد به گوران خستش میکنه. سرش را روی کتاب خم میکند. احساس میکنم ناراحت و معذب است. سینی چای را بر برمیدارم و میگویم چایی میخوریم؟ نه خیلی ممنون فکر نکنم به این زودی کارشون تموم بشه بهتر یه چایی بخوریم چیزی نمیگوید. حتی سرش رو هم از روی کتاب بلند نمی کند احتمالا از اینکه به نوعی با من تنها شده خجالت می کشد گل بانو شما نمی دونید چه کار می بعد جوری دلم شور می زنه. یعنی حقیقتش برای نگرانم اون زن ساده ایه. رستش من چیز زیادی دستگیرم نشده ولی به نظرم میخوان یه جورایی دوباره نصارو برگردونن سر خونه و زندگیش چجوری؟ اون زن منه میخندد و بلافاصله میگوید واقعا؟ واقعا چی؟ واقعا زن شماست؟ خب آره خودتون که میبینید دوباره میخندد دارم کم کم عصبانی میشوم من دوستش دارم راستش من نمیخوام حرفش را قطع میکنم دلم میخواهد حرف بزند حرفهای او حتما به نوعی حرفهای است که در آن اتاق نشستند و تنها پچپچ پچ گنگشان را میشنوم خواهش میکنم رو دربایسی نکنید حرف بزنید خب من فکر میکنم این ازدواج کم است و در نهایت این نسا است که زرر میکند اولاً چرا کم دوام؟ دواماً چرا نسا ضرر میکنه؟ یعنی واقعاً شما میخوای تا آخر اون با نسا زندگی کنید؟ آره میبینید که حتماً فردا که دانشگاه باز شد این زن ایلیتی بدبخت رو برمیدارید میبرید تهران و با خوشی و خورمی مثل زمانهایی... نه من اونو تهران نمیبرم. خودم میام اینجا. میخندد. خیلی قشنگه. مثل سرگذشتهایی که تو رومان ها میخونیم کلافم لاقل امیدوار بودم او بداند که من چقدر ایسار کرده و میکنم نسا زندگی خوبی داره چرا باید ضرر بکنه شما او را از ایلو تبارش از بچه هاش جدا کردیم اون بدون بچه هاش نمیتونه زیاد دوون بیاره اولا همون ایلو تبارش بیرونش کردن من فردا که بچهش به دنیا بیاد سرش گرم میشه کم کم عادت میکنه اگه نسا طور دیگه ای فکر کنه اگه خودش تمایلی به این زندگی نداشته باشه چی؟ میخندم خندم ملغمه ای از خشم ندانستن و عصبانیت است یعنی اونا دارن ترتیبی میدن که نسا برگرده به ایلش؟ من نمیدونم چجوری میخوان این کارو بکنن ولی فکر میکنم اونا از شما بهتر فکر میکنن ناخداگاه بدون اینکه به کلامی که میگویم فکر کنم میگویم خیلی بیشوری صدای ناله نسارا میشنوم داوود روی دفترش خم شده و تکالیفش رو انجام میده بلند میشوم از اتاق بیرون میروم نوکه سیگار روشن مادرم را رو کنار درخت انار میبینم و به طرفش میروم میخی اون زنه بدبختو بکشین بزنین ببرمش دکتر والا به خدا گناه داره خب برو ببین خودشی میگه اگه میخواد ببرش دکتر راه می میشنوم هی از اون درسی که خوندی بدون اینکه در بزنم وارد میشوم بیبی خاور مرا که میبیند جا میخورد وای آقای مدیر ترسیدم یه یاد چیزی؟ چیزی با رنگ و روی پریده گوشه اتاق دراز کشیده است کنارش می نشینم می خواهم دستش را بگیرم دستش را زیر پتو پنهان می کند دستم را روی پیشانیش میگذارم دستم خیس میشود میخوای ببرمت دکتر؟ نه تو رو به پیر یکی از ایجا برو بیرون برو جونوم برو بیبی خواهر چیزی رو در هاون میساید اتاق بوی دکانهای عطاری میدهد ها بیبی بی چه کار کنم؟ میخندد کاری از دست شما برنمیاد، آقای مدیر به سلامتی داره فارق میشه جو می خورم الان که موقعش نیست هنوز ششماهش هم تموم نشده من زن دیدم که پنج ماه بارش زمین نشته مادرم توی چارچوب در ظاهر می شود خودم را کنار می کشم مادرم کنار سماور می نشیند چه کارش کردین چه به خوردش دادین چه بلایی سر این زن ساده آوردین مادرم میگوید از بله که تو سرشو وردی بدتر نیست. بیب خاور بلند می شود. محتوی حاون را در کتری سیاه آبی می ریزد و از شیر سماور آب رویان می گیرد. دوباره خودم را به نسا نزدیک می کنم. را کنار می زنم. تو رو به پیر یکی از ایجا برو. بزا به درد خودم بمیرم. چه کارت کردن نسا؟ میبرمت دکتر. نه ترس خوب میشی؟ من دکتر نمیام شو از اینجا برو دیگه هم اینجا برنگرد تو مثل برارم هستی این حرفا چیه نسا تو زن منی این مزخرفات چیه برو برو برو, برو. خودم را عقب میکشم. کشم بیبی خاور برایم چای می ریزد نیست از پنم شب هم خانه پسرمویش مانده از آن شبیه که گفتم خیلی بیشور است. خبری از او ندارم دلم میخواهد الان اینجا بود لااقل می به من بگوید که اینها از من بهتر میفهمند. دلم میخواهد باور کنم که مادرم و مادرش خیر و صلاح نسارا می خواهند بفرماید آقای مدیر ناراحت نباشین ماشالله بنیش خوبه زن ایلیاتی روی قاطر رو عصب میزد. از اتاق میآیم بیرون حالا فکر می کنم گربانو درست می گفت. بیبی بی و مادرم خیلی به هم شبیهند سیگارم را بر می دارم کابشنم را می پوشم و از خانه بیرون می زنم همه جداریک است آسمان است. راهم را به طرف مدرسه کج می کنم دلم می خواهد بروم پیش آقای صبحی و شب را هم آنجا بمانم صدای زوزه سگی را می شنوم. به نظرم از سمت قبرستان می آید. برق اتاق آقای صبحی خاموش است فکر می کنم. حتما خوابیده. می خواهم در بزنم که قفل را رو روی چفت در می بینم. بر می در کلاس خودم را باز می کنم. برق ندارد. روی یکی از نیمکت ها می نشینم. سیگار آتش می زنم. گیجا نمیدانم نمی دانم با وضعیت پیش آمده چه کار کنم. احساس میکنم اگر نسا بر سر خانه و زندگیش برگردد باری از روی دوشم برداشته میشود. اما نگران برخورده برادر شوهرهایش هستم. میترسم بچه من را قبول نکنند و سر زن بیچاره را زیر آب کنند. بچه را چکار کنم؟ اگر مادرم او را با خودش نبرد؟ ممکن است بیبی خاور؟ نه. بیبی خاور قبول نمیکنه. باید نسارا نگه دارم یا بچه را به شیرخوارگاه بسپارم نه گناه دارد اصلا کدام بچه؟ مگر بچه شش ماهه می ماند؟ بلند می شود را زیر کفشم له می کنم سرموتا مغز خانم نفوذ کرده است دستهایم را در جیب شلوارم میچپانم. و یقه کپشنم را بالا می وقتی در حیات رو باز میکنم صدای جیغ نسا را میشنوم. به طرف اتاق بیبی بی, بی خواهر در از تو چفت شده است. به در میکوبم. صدای بیبی خاور را میشنوم. کیه؟ منم چه خبره؟ برین تو اتاقتون آقای مدیر. به سلامتی فارغ شد. سالمه؟ ها بله. خوبه. الحمدلله خوبه. صدای ناله نسارا می شنوم و صدای مادرم را. سعید سرما میخوری برو تو اتاق. دیگه همه چیز تموم شد. دختره یا پسر. هیچ کس جواب نمی دهد. اما صداهایی می شنوم. انگار هم مادرم هم بیبی بی خاور سخت مشغولند. گفتم دختره یا پسر. دختر آقای مدیر. خیالم راحت می شود. به اتاق برمی کرد. داوود جلو در روی زمین خوابیده است تصمیم خودم را گرفتم، چند بار پیش خودم تمرین کردم، حالا میدانم چه باید بگویم گلبانو سر چاه صرف میشوید. شوید، کابشنم را روی دوشم می اندازم. صدای خنده مادرم را از اتاق بیبی بی خاور می شنوم. سلام، بیان که نگاهم کند جواب می داد، بشخابها را توی یک آبکش چیده است از روزی که مادرم و نسا در اتاقشان اطراق کردند، ظرفهایی که سر چاه شسته می شود، آن ظرفهایی سابق نیستند. دلو را توی چاه می اندازم. صدای خوردن آن را به سطح آب می شندم. گلبانو ها را می استکان ها کمر و لبتلایی هستند. دلو را بالا می کشم و توی تشت مسی خالیش می کنم. دوباره دلو را در چاه می و آب را دوباره در تشت خالی می کنم. تشت پر شده اما من هنوز حرفم را نزدم دوباره دلو را در چاه میاندازم این بار دلو را بالا میکشم و آهسته آهسته آب را روی استکان ها میریزم بدون اینکه واکنشی نشان بدهد، یکی یکی استکان ها را زیر باریکه آب دلو آب میکشد و در سینی میگذارد انگشت هایش قرمز شدند بلند می شود و میگوید خیلی ممنون حق با شما بود. من معذرت میخوام. صدایم میلرزد. توقف نمی کنم تا جوابم را بگیرم. به طرف اتاقم می دوم و صدای خنده را پشت سرم می شنوم. حس خوبی دارم. ته دلم خوشحالم که همه این ماجراها ها پیش آمدن تا من این لحظه قشنگ را تجربه کنم. حدود 25 روز از زایمان نسا می گذرد. بچه را بی, بی زیر درخت انار دفن کرده است. سا عجیبی نسبت به این درخت پیدا کردم. احساس می کنم از این به بعد از وجود من و نسا در میوه های این درخت نشانی هست. فکر می کنم داستانی درباره عناری بنویسم که درون یکی از دانه هایش کودکی بهنهان است. حتی شروع به نوشتن می کنم اما نمیتوانم ادامه بدهم. نسا یک پار هم به اتاق من نیامده. مادرم شبها در اتاق من می خوابد و نسا حاضر نیست مرا ببیند. هر وقت هم مرا دیده سرش رو پایین انداخته و گفته که شما مثل برارم هستین. احساس من هم نسبت به او تغییر کرده. وقتی دیروز او را توی حیات دیدم، حس کردم با یک زن نامحرم روبرو شدم. دست و پایم را گم کردم و بلافاصله از در حیات بیرون رفتم. مادرم میگوید بیبی خاور که خدای رحیم آباد را واسطه کرده تا با برادر شوهرهایش حرف بزند. برادر شوهر بزرگش همراه گله به گرمسیر رفته. کت خدا گفته یکی از افراد ایل رفته که هنوش تا شفاعت نصاع را پیش برادر شوهر بزرگتر بکند، هنوز برنگشته. مادرم میگوید بیبی خاور به کتخدای رحیم آباد گفته این زن بی گناه است. او اصلا حامله نبود. باد بند شده بود. چند وقتی عادت ماهانهاش بند آمده بوده و بیچاره ترسیده خودش را به گردن این بچه شهری انداخته. اگرنه خودشان می دانند که او با این بچه شهری رابطه ای نداشته است. به مادرم می گویم، فکر می کنید آنها اینقدر احمقند که چنین دروغهایی را باور کنند؟ نه اینکه باور کنند، ولی خب چشپوشی می کنند. از قول کت خدای رحیم آباد می که برادر شوهرهای نسا هم ترجیح میدهند دهند او برگردد سر خانه و زندگیش چون بچه هایش بی سر و سامان شدند. کسی به گوسفندهایش نمیرسد و به آب و کش رسیدگی نمی شود. نسا یک هفته بعد از زایمانش همراه با مادرم به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق داده. ظاهرا همه چیز برای خواندن سیقه ی طلاق آماده است. اما هنوز موافقت برادر شوهر بزرگتر از کهنوج نرسیده است و من گفتم تا یقین پیدا نکنم که ایل نسا را میپذیرد او را طلاق نمی دهم. بیبی بی خاور صبح شبی که نسا زایمان کرد به اتاقم آمد داود را بیدار کرد و به من گفت بچه نارس بود موقع زایمان مرد از شنیدن این خبر اصلا یکی نخوردم خوب میدانستم که شب قبل به جای پرسیدن از زنده بودن بچه پرسیده بودم دختر است یا پسر و موقعی که بیبی بی خاور گفته بود دختر است یقین پیدا کرده بودم که بچه مرده است دو روز بعد وقتی به طور تصادفی خاک زیر درخت انار را زیر و روشاده دیدم، فهمیدم سمره گناه نصاب و خودسازی من زیر این خاک خفته است. از آن روز به بعد، به جای فکر کردم به بچه، به درخت انار فکر می کردم. در این 25 روز خیلی سعی کردم تا بدانم اهالی روستای شمساباد در چه قضاوتی می کنند. اما ظاهراً هیچ چیز از در خانه بیرون نرفته است. حتی کسی نمی که نسا زایمان کرده. اما همه از آمدن مادرم اطلاع دارند. مادرم و بیبی بی خاور گاهی با ماشین موسا به گوران می روند و چیزهایی می خرند. به گمانم آن ظرفهای ملامین و آن استکانهای لبتلایی را هم مادرم خریده. همین دیروز شماره حسابی می خواست تا به پدرم بدهد و او برایش از تهران پول بفرستد. هرچه اصرار می کنم برگردد پیش پدرم می گوید. وقتی می رود که مرا هم با خودش ببرد هر هفته به دفتر مخابرات گوران می رود و با پدرم تلفنی صحبت می کند به نظرم شرح فتوحاتش را می دهد. می بینم که فانوس به دست به انتهای باغچه می رود. منتظر می مانم تا به طویله برسد. حتما امشب هم نوبت زایمان یکی از می شاست. از طویله می گذرد و به کاهتان میرسد. به یاد شبی می که کتاب به دست از کاهتان بیرون آمد و فردا پیرمرد و دریا را برایم آورد. میدانم بیبی خاور نیست. حتما کسی در دهات اطراف چانه می اندازد یا زنی بارش را زمین می گذارد. کابشنم را میپوشم از اتاق بیرون نیایم، باریکه نوری از لای درزلت های در اتاق بیبی بی خاور بیرون میزند آهسس خودم را به چاه می رسانم مدتی کنار تشت مسی پر از آب می ایستم گاوی نمیدانم از کجا ماغ میکشد به طرف انتهای باغچه راه میافتم به درخت انار می رسم، به سرعت از کنارش میگذرم از روزی که مادرم رفته است، سعی می کنم به نسا و درخت انار فکر نکنم. دمپایی هایم گلی می شوند. به سختی پیش می روم. به طویلی که می رسم احساس می کنم در در برپا شده است. احتمالا گوسفندها صدای پای یک قریبه را شنیدند. می بوی پهن خیس خورده سرم را پر می کند. باریکه ی نور ضعیفی از در کاهتان بیرون می زند. آهسته راه می افتم. بوی کاه و بیده در بینیم میپیچد. پیچد لحظه پشت در می ایستم. سعی می کنم از درز باری که در چوبی داخل کاهتن را ببینم چیزی نمی بینم. در را باز می کنم و مثل کسی که بخواهد مچه کسی را بگیرد در چارچوب در میایستم گلبانو سر بلند می کند. کتاب از دستش به زمین می افتد. دهانش باز می شود، اما فریاد نمی زند. جلوتر می روم. احساس می کنم وضعیت عادی نیست. می گویم، پس کتابخانه شما اینجاست به کارتون کتابی که گوشش از زیر کاه بیرون زده است، اشاره می کنم. هنوز دهانش باز است و چشمانش حرکت نمی کند. میخندم و میگویم من هم گلبانو خانم هیچ واکنشی نشان نمی دهد. جلوش مینشینم کتاب خرمگس روی زمین افتاد است کتاب را بر می حرف نمیزند. دستم را جلو چشم تکان میدهم می دهم. چند بار پلک می زند. دهانش را چند بار می و باز می کند. اما چیزی نمی‌گوید. حالا یقین پیدا کردم که او را ترسندم. فانوس را از روی زمین بر و جلوی صورتش می گیرم. جلو می روم و می‌گویم: منم گلبانو خانم، منم سعید. چیزی نمی‌گوید. صدای نفسهایش را می شنویم. بلنشین بریم بیرون، پاشین. مثل این که ترسیدین هیچ واکنشی نشان نمیداد. بلند میشوم کتاب خرمگس را داخل کارتون میگذارم حالا خودم هم ترسیدم دستبهایم میلرزد آهسته بازویش را میگیرم به سختی بلند میشود احساس میکنم نمیتواند راه برود سنگینی بدنش را روی دستم احساس میکنم فانوس را زمین میگذارم بدنش به طرف زمین کج میشود فقط فرصت میکنم بغلش کنم دم گلیم را که سنگین شدن می اندازم. سرش روی شانم لق میخورد. فکر می کنم بیهوش شده است به طرف چاه آب می رفم. روی چارپایی چوبی می نشانمش. سرش را در دست میگیرم و تکان می دهم گلبانو تو باز کن ببین منم سعید سرش را با یک دست نگه می دارم و با دست دیگر آب به صورتش می پشم. تند و تند پلک میزند آهسته به صورتش سیلی میزنم سرش را به چپ و راست میگرداند گلبانو منم سعید نه ترس ببین منم دستش را روی صورتش میگذارد آهسته خودش را کنار میکشد بازویش را میگیرم پاشو بریم تو اتاق سرما میخوری بلند میشود تا دم در اتاق میبرمش بازویش را آهسته ول میکنم داوود را صدا میکنم خواهر ترسیده ببرش تو داوود به روبر نگاه هم می کند لنگه در را باز می کنم و او را عقب می زنم بازوی گلبانو را می گیرم برو براش یه بالش بیار حالش بده داوود دست چست. است گلبانو همان وسط و اتاق می نشیند یکی از بالش های روی رخت ها را بر می دارم داوود بالای سر گلبانو می ایستد. دراز بکش داوود چرا وایستدی منو نگاه می کنی؟ یه لیوان آبغن درست کن چشم با. لحاف کهنه ای را از روی کپه رخت ها بر می دارم و رویش می کشم. رو از روی موهایش کنار رفته. لحاف را تا زیر چانه بالا می کشم. آهسته دستم را روی موهایش می کشم. داود با قاشق روی تند و تند آبغند را هم می زند. سرده پلکایش را به هم می زند. بلند می شوم لحاف دیگری رویش می اندازم. داود لیوان آبقند را به دستم می دهد. باشی یکم کم بخورین، حالتونو جا میاره سعی میکند بلند شود دستم را به طرف دستش میبرم، دستش را کنار میکشد روسریش روی شانه هایش افتاده موهای بلند و صافش را دومه اسبی بسته است به داوود میگویم بیا کمکش کن داوود شانه هایش را میگیرد، آبغند را کم کم میخورد شانه را ماساج بده، بمال با حرکت دست به داوود نشان می دهم چطور شناهایش را ماساژ بدهد آبغند را میخورد روریش را روی سرش مرتب می کند. دراز می کشد و لحاف را روی خودش می کشد بازم سردتونه؟ چیزی نمیگوید از داود میخواهم سماور را رو روشن کند خودم را جلو می کشم دلم میخواهد دستم را روی پیشانیش بگذارم حرف بزنین گلبان و خانم شما نباید دوباره مریض بشین لبخند کمرنگی روی لبهای رنگ پریدهش داوود بالاخره سماور را رو روشن می داوود؟ حاده به دهانش چشمی دوزم. فانوس را از توی که بیار خطرناکه. آهسته از جایش بلند می شود. خودش را عقب می کشد و به دیوار تکه میدهد یکی از لافها را رو روی زانوهایش می‌کشد. نگاهش را از من می دزدد. وقتی شما اومدین تو من توی دنیای دیگه ای بودم میدونین اولین بار اختر اسفندیاری را رو به من داد مدتی بود دلم می خواست کشف کنم این کتابا را از کجا میارین؟ می این این کتابا ماره من نیست حتما مهری که روی کتابا خورده دیدین این کتابای پاکسازی شده کتابخانه امومی گورانند زن پسرمون کتاب دار این کتابخونه است پسرمون اهل کتاب و مطالعه است اونا رو به نابود کنه اووردشون اینجا البته داوود در رو باز می کند گلبانو حرفش را قطع می امیدوارم این حرفا پیش خودتون بمونه میخندم داوود جان لطف میکنی سیگار منو بیاری؟ چشم آقا گلبانو نگاهش را به در دوخت است. داوود بیرون می رود. بوی نفت توی اتاق پیچیده. احتمالا سماور خوب نمی سوزد. بلند می شدم سماور را تنظیم می کنم. داوود با سیگارم را میآورد. سیگار آتش می زنم. به دیوار تکیه می دهم و به گلبانو نگاه می کنم. وقتی نگاهش را از من می دزدد، سرخی رنگی روی گونههایش نمایان می شود. احساس خوبی پیدا می کنم دلم می خواهد نگاهش را قافل گیر کنم داود کتابش را بر می دارد و کنار گلبانو می نشیند. خوبی دده؟ گلبانو به پشت داوود می زند و داوود لبخند می زند خوبم کاکا درس تو بخون داوود کتابش را باز می کند نگاه هم را روی صورت گلبانو ثابت نگه می دارم. میخواهم توی چشمهایش بخندم و بگویم میدانم چرا خجالت میکشی. اما او همه جا را نگاه میکند الا جایی را که باید نگاه کند.